هر که با بدان نشیند، نیکی نبیند. گر نشیند فرشتهای با دیو، وحشت آموزد و خیانت و ریو، از بدان نیکوی نیاموزی، نکند گرگ پوستین دوزی،